زیرم آب نمیشه گهوارم خونی پاره ناف نمیشه نافم و بایندم با و دستگاه غریبه یار دافته ی جدا بافته نبود سند و با و اقتصاد دلیلش بیچید و رفت بلی قصه ها عجیبه در به یاد در بستان نیست یاره در بو رو از ماس میکشید لا نبود ولی کن نظام فاسد نعلیناشو کلامی کوبید یارت لای شکاری شد ما زندانی شدیم بیرات بالای الماس و میت جوید فرمونده لشکر شد ولی ما ستاره شدیم یار دبستانی به یاد دبستانی است یار دبستانی شاخوب شبستانی سر قبض قبض ریال قمزه مفتم بسک و صورت بغلی تف شد سر تا ته قورو با جومات شخص صوفیارو دست مقصر دو ول قدرت داد دست قدرت یار دبستانی ایمان بود شد دشمن ما یار دبستانی به یاد دبستانیست یار دبستانی شا خب